راچه به روایاتی بود که در پوسته در جلد میته بود و از کریم چون بحث این این به یک جایی رسیده یک نقدارم به خاطر اینکه مجموعهش مجموعش به اصطلاح خندیر هم بیمونتظرات هست البته مرحوم شیح در مسئله آینده بحث سگ و خوک رو با هم آورده که این شالا متعرض میشه چون دیگه بناس این مطالب اونجا گفته بشی اینجا فقط در حد این که حالا بباید این رو مفرح می کنید. این روایت از کدیم یک روایت درباره باید موی خنزیره که نسبت دو بحث در روح هست یکی انتفاق و یکی هم تهارم این روایت ایست که در موی خنزیر باش تناب رستم ما در واقع خنزیر روایت دیگه هم را به موی خنزیر داریم برای انتفاع. شبیه این چیزهایی که به بچه ها عابضون میکردن خرد به اصطلاح یا مثلا شبیه تسبیح اون نخش رو از موی خنزیر قرار میدادم. اونم اینشالله هست که هم تو بحث خنزیر فیرنشون رسیدیم به این بحث به یک مناسبتی چون این روایات روایت دیری داره. در این مقدار فعلا می کنیم تحصیل اون بحث خیلی جای خودش حدیث شماره دو از باب چهارده از ابواب ماه مطلب به سنده صحیح اعلائی از زراره قال سألتوه عن الحب تو این روایت داره که زراره سوال کرد و امام جواب داده در خیلی سنده شم سهی نمیشه شه اشکال این حدیث یک مضمون دیگری در شماره سه آمده در همین باب چهارده و انهو انهو یعنی مرحوم کلینی انهو و ان محمد ابن یهیان انه احمد ابن محمد مراد اشعریه که که را کردیم انه ابن فضل عرض کردیم ابن فضال عند اطلاق در کتاب کافی ابن فضال شدره حسن ابن علی ابن فضال که ما پشونیم ابن فضل اسمش حسن ایشان سه تا پسر داشتن علی و محمد و احمد سه پسر لیکن اشهر این پسرها علیه علی ابن حسن ابن فضل از است. مشروطه حسن هم توتیز بودن باید پدرم که بیقایت پس ابن فضل در کتاب کافی این در اطلاق زیاد داریم ما در کتاب کافی احادیثی که توش عنوان ابن فضل داره این ابن فضل پدره که حسن باشه و از مشاهیر اصحاب در کوفه بوده خیلی عجب مثلا اهل زهد و تقوا و عبادت و حتی در بیابان باشی مشغول عبادت بوده وحوش و رژ جمع می‌شدن که گور و به اون کاری هم نداشتن چیزهایی از اونها می‌کنن در هر حال این بوده میگن از فتاویات نشون برگشته در اولش فتاوی بوده بعد در وقت موتش اعلام میکنه که ایمانی به عبدالله هست. کیف ماکان کتابهای ایشان معروفه و خودش هم شخصیت بسیار بزرگیه. حسن ابن علی ابن فضل یا ابن فضل پدر این کتابها رو مرحوم اشعری در سفری که به عراق در کوفه کتابهای ابن فضان رو با خودش قم آورده. و همین نسخه در قم خیلی مشهور میشه. کلینی هم از همین نسخه نقل میکنه. اما در کتاب شیخ توسی خیلی جاهای ایشون ابتدا میکنه به اسم ابن فضل در تهذیب استفسار یک ابن فضل اون ابن فضل مطلق در کتاب شیخ طوسی اونجایی که ابتدا اسنادها اون ابن فضل کثر ایشانه علی ابن حسنه در ابن فضل مطلق در کتاب کافی یک نفره در کتاب تهذیب که ابتدا اسنادش شخص دیگری یعنی پسر ایشانه در کتاب کافی پدره در کتاب تحضیح پسر و پسر هم از کردیم سه تا داره علی و احمد و محمد این در در کلمات اصحاب ما در ابن فضل پسر مراد علیه اشهر و هم علی هم احمد و محمد در ابن فضال خب الحمدلله تاریخ حدیث هم روشن است کتاب ابن فضل که این کتاب در کوفه تألیف شده بعدها در عوائل قرنه به اصطلاح سه بوم اواخر قرن دو این اوائل قرن سوم بوم دیویست دو اینها سالها دیویست ای به قوم عورده شده و این نصره هم که عورده نصره مرحوم احمد عشقری خب تا اینجا هیچ مشکل نمید ابن فضال این ابن بکی ایشون پسر برادر به اصطلاح مرحوم زرار هست عبدالله ابن بکیر ابن اعین خب ایشون به اصطلاح جز اصحاب اجماع هست انصافان هم روز فقه ها صاحب نظرم بوده به برسش هست عمل حسین ابن زراره ایشون پسر اموی بود ایشون پسر زراره است. و به طبیعت الحال پسر اموی ابن بکر میشه از پسر اموش این حدیث را هم من عبی عبدالله علیه السلام یه حدیث قال قلت له. از این عبارت معلوم میشه که این سؤال رو حسین ابن زراره کرده از امام حالا ما روایت رو کامل بعد از این میخونم حالا فعلا این مقداری که اینجاست بعد کامل میخونم از این عبارت معلوم میشه که این مطلب رو حسین بن زراره چون حالا من لحظه رو بعد میخونم چون جزء ناقصه زراره الان کامل میخونم در اونجا داره که قال حسین حسین زر قال و عبی پدر من از امام صادق فارسی اون سال بعد میخونه بعد داره و عن قلت من به او گفتم این سوال موی خنزی و موی خوک رو حسین ابن زراره میگه من سؤال کردم حالا تو اون حدیث شماره دو داره که انزرار نه بیاده رو قاله سأل تو زراره من سؤال کردم حالا آیا اونجا اشتباه شده ابن زراره بوده مثلا به جای انزراره ابن زراره بوده احتمال هست لیکن من ازرام که اگه بشه این مقدار سخت بود در روایات کتب اربعه مخصان کافی و در روایات مشایط مثل ابن محبوب و علی بن را آب قبول بکنیم دیگه تقریبا باید باب حدیث ببندیم خدای نکرده اگه باید کافی بی این که این بزرگان این مقدار اشتباه بکنن بین زرار و پسر زرار رو فهمت دارن خیلی یه اوضاع حدیث در احتمال داره ولی علم و اندالله سبحانه و تعالی احتمال داره که حال در اون مجلس پسر سوال کرده بعدم پدر سوال کرده حالا یا نمیشه بگیم بخواد چون در این روایت ارز نیکنم نکته ای که در روایت فسر زراره هست حسین میگه ساله و انا قلت تو ظاهرش اینه که این سوال مال فسر است دیگه لکن در اون روایت صحیحه دارن ابي عبد الله قال سالت و زراره هم میگه سالت تو یه خیلی بعیده بگیم اون روایت یا تکذیبش می‌کنیم. ز احتمالاً زورار هم بحث سؤال کرده. مشتریارش نمی‌تونه حرفی که پدرش از حضرت. نداره از زوران ابی عبد الله که داره که بله داره ابن حسین زورار نبیو قال کل له. اون حسین زورارینه. اونجایی که خود زوران داشت سر سئ علاییسی که امرآم از ابن محبوب نمی‌تونه. بگیم یک ابن زورار اوفساده باشه. خیلی بعیده. این همین سؤال شعر, شعر الخنزیر یومل حبلن و یستقا من البر علتی یو شرب اومنها او یوتوزه اومنها قال لا بأس به البته فرقش با روایت زراره در مثل یک مقداری با همه یه فرق مضمون یکی هم مثلا در روایت زراره داره که یستقا به ما من البر اینجا داره بیبی من البئر هل یتووقع من دار کلم ما پینجه دار التی یشرب منها اول تر از ماها این به این عنوان این روایت حسن زراره احتمالش به همون اینکه آب به بئر برگرده زمیر به بئر برگرده که در روایت زراره هم همین توجیه آورده علاوه در روایت حسین زراری این احتمال قوی تره اما احتمالی که شیخ داده مراد این نیست که انسان از آب اون دل استعمال بکنه مراد استعمال از آب حوزه از آب چاهه آب چاه به خاطر ملاقات با موی خندیر نجس نمیشه انصافش دور رسول حسین زراری معنا واضح تر این راجبی این رسل. خب تا اینجا کار روشن شد ما در اینجا دو تا روایت داریم و مرحوم کلینی با تمام جلالت شنش. اونا مثل ما گیر کرده هر دو رو نعل کرده در یکی پسر صحیح آمده زرار است در یکی آمده که پسرش حسین زراره است تو حسین زرار توثیق نداره یک روایت مفصلی است که امام صادق از می‌فرمایید در اونجا میگن که اون دو پسر تو حسن و حسین دو تا پسر داشته و دعا میکنه أعوذ همون الله و الله رعاية یتی فلان از دعای خوبی در حق اونها میکنه و انداخ حسین و حسن این دو فرزند زراره توصیح نداره به هر حال مرحوم کلینی با جلالت قدرش مثل ما گیر کرده در کتاب ابن محبوب سؤال از زراره است. در کتاب ابن فضال که از فتحیه است سؤال از مسید ابن زراره است. و فقط این است که در کتاب ابن محبوب این شبهه میاد که انسان خیال میکنه از اون دل روزو بگیره اما در روایت ابن فضالی هم نیست چون داره من البعرلتی یشرب امنها او یوتر از امنها معلومی شه سوال از چاهه نه از اون دل دیگه این شغرم حل میکنه روایت حسین صورت شغره حل میکنه البته مرحوم شیخ صدوق قدس الله نفسه این روایت رو قبول نکرده به این مقدار به هر حال چرا؟ به خاطر اینکه مسئله یا تقریب داره و یا شخص داره حتی بوده که چاه نجس میشه و ایشان فقط برای انتفا این روایت محلو کرده این تا اینجا که معلوم شد یک روایتی موجود بوده حالا فقط بحث تر این است این روایت مال زراره است یا مال کسر ایشان بالا خیلی مطمی یکیه خیلی بعیده خیلی بعیده یعنی می شده. شدن میشه اما خیلی بعیده یعنی بحث سر بودش داریم این راجع به یک طایفه از روایات و اما بقیه روایات از که یه مقداری از این دبایات رو مرحوم صاحب وسائل در باب اطعمه محرمه اوورده کتاب من الان از این جلد چونزه چاپ مرحوم های ربانی نقل کنم، اما فرقی میکنی یکی عباب الاطعمه محرمه باب سی و سه ذری یا این روایت رو با همون سندی که الان خوندیم به شماره چهار، مرحوم کلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بوکیر. الان خوندیم شرح مفصل دادیم عن حسین بن زراره بجسد قال کن ترند ابي عبد الله علیه السلام و ابي یساله عن نسب من البیت این چیزهای تو مثلا حیاتشون نیست ول بیره من میته، تقمی که مثلا مرگی که مرده مردار شده میته شده حالا مثلا چی میشه باز کردن تخم باقی در اون سالم بوده که این هم احتمال داره اینجا با پوست باشه احتمال داره که هنوز هم پوست هم نبسته پوست آحکی شد و انفهت المیته انفه همون پنیرمایه بسید نه شیردان مایه ای که از ما این حیوانات کوچیک میگیرن که تو شیر میزن تبدیل تنبیه میشه میوارزن بهت. قال علیه السلام در این فهد بحث مستقلی داره حالا ما بعدی از یه مقداری واسشون خواهیم گفت متعرض میشیم. گره. فقال علیه السلام کل هاضا ذکیون. قال فقلت تو. اینی که اعتیاده در یک همین روایت بودم زینب داره از امام ایشون میگه من گفتم به امام. ف شعر یج علا حملن یستقابه البر حلتی یش منها با منها فرقال لا بأسه به تمام برمودن که اشفال نمید و لذا یک احتمال داره که این روایت شعر خنزیر اساساً از حسیدن نزراره باشه نه از زراره با اون روایت نمیستاز انصافش و بخن که اون روایت این مقدار تصرف بکنیم بسیار بسیار کار مشکلیه انصافا باید تمام روایات رو بهم هم بزن هم نسبه به حسین ابن زراره البته ایشان در این باره روایت دیگه هم داره شماره هشت از همون باب سی و سه از اطعمه مرحوم کلیم اینجوری فرمودن این و فی روایت صفوان همه حسین ابن زراره این عبدالله آل از و صوف و ریش و کلو نابطم لایکونو و نابت نابط لایکونو میگه قال و سأل تو تخرج امید به تخرج من بطن دجاجتون میته فقال تأکله ها, ها خب یک ندایی که ما لا حال و الحیاته که انشاءالله بعدم ارز خواهیم کرد و اضافه بر اون فرمودن که به ایده هم اشکالن تقمره هیوان مرده اشکالن این روایت رو مرحوم کلینی از صفوان کرده البته ایشان تو متعدد به صفوان داره بله ب... بد نیست این روایت رو که مرحوم کلینی با این اختصار از صفوان نقل کرده بله مرحوم شیخ توسی باز مستقلن آورده اشتباه نشه این دوتا با هم دیگه فرق میکنن شماره هشت مرحوم کلینی در آوردن بران صفوان در شماره دوازده مرحوم شیخ توسی آورده و به اسنادهی مرحوم شیخ توسی انر حسین بن سعید پس معلوم شد که مصدر مرحوم کلینی با مصدر مرحوم شیخ فرق میکنه مرحوم کلینی از رویات صفوان همین شعر و سوف و ریش و اینها رو آوردن مو و پشم و بطر و ریش پر و کل نابتن دارا کنه همون اما مرحوم شیخ طوسی این حدیث رو از کتاب حسین سعید نقل کرده خوب دقت کردیم مصدر عوض شد در کتاب حسین سعید اینطور آورده از ان صفوان امر حسین بن زراره از کلام حسین زراره توسیح سریحی نداره اما اینجا صفوان ازش نقل کرده بر همون قاعده معروفی گفتن که لایهر برابر سلعته میشه مثلا قبول کرد که حسین ذراره توصیف شده از که در حسین ذراره یک دعایی از زمام صادق که در حق این دو تا دو نفر این حسن و حسین ذراره دعا کردن و خب پسر ذراره هم هست لکن بسیار قلیل حدیثه ایشان احادیثش کمه نجاشی هم متعرض حسین ذراره نشد نه حسین نه حسن. و سر عدم تعرض نجاشی چون نا کتاب نداشتند راوی هستن اما کتاب نداشتن ولیذا مرحوم نجاشی هم متعرض احوال این دو برادر نشده هیچوش اسمی از اینها نمون حالا من روایت مرحوم حسین زراره بخونم این حدیث البته جز به شباز روایات ماز خدا رحمت کنه مرحوم آی شعرانی مرحوم آی شعر شعران شعران شعران الله بسیار مرده بزرگوار و بسیار مرده اخلاقی و خیلی واپرجام جامع جهاتون یک حاشیه مفصلی اینجا ایشان در همون چاپ مرحوم ربانی نوشته در حدود یک صفحه و نیم میشد همین مفصل ایشان رد کردن روایت قبول نکردن خب روایت مشکل داره انصافا از ایشان مفصل این مطلب رو در حاشیه نوشتن و یک مطالبی رو هم راجزه به اصطلاح بحث های حدیثی چون مرحوم شعرانی غیر از تخصصیشان ایشان در نجوم و در فلسفه و کلام و این چیزا و تفسیر و حواشی خوبی بر تفسیر ابو ظفر همون فرمایند اون خب تو بحثی حدیثی هم ایشون کار کردن یه هواشی بسیار خوب بر اون وافی چاپ قدی چاپ قدی وافی هواشی خوبی داره یه مقدار هم خوبی در یه قسمتای از وصایل داره یکیش اینجا. اینجا خیلی طولانی حدیثیشان ایشان حاجی ایشان برای یک صفحه و نگاه حالا حدیث این حدیث از منطردات شیخ توزیست پس تا اینجا روشن شد که در این باب سی و سه،, سه تا حدیث از حسین زراره آمده یکی شماره چهاره که کلینی اوورده سند رو کامل ذکر کرده و این شماره چهار رو کلینی از کتاب سفران گرفت رو یک روایت زراره است در شعر کنزیر که کلینی از کتاب ابن محبوب گرفت یک روایت حسین ابن زرارت در شعر خنزیر غیر شعر خنزیر که سن و دندان و نمیدونم انفهه و تخنگور و اینها این رو مرحوم کلینی از کتاب ابن فضال گرفت یک روایت شماره هشت هست درباره شعر و صوف و ریش و یعنی پشم و پر و اینجور چیزا این رو مرحوم کلینی از کتاب صحفوان گرفته و این صاحبان هم تگه آدم تحجیبش میگیرین این حسین زراله مرحوم شده شخصیتی بوده به هرها روایت ایشان در سه تا کتاب قبل از کلینی که هر سه جزره ایون کتاب اصحاب ماست بزرد. یکی جبن فرزاشون ما چهار چهار ابن فرزاله از حسین زراله <تصح> هشتش از کتاب صحفوانه اما از زراره اصلاب محبوبه از زراره از این محبوب حالا یه حالا فیلن روایت حسین زراره در دو کتاب کلنی نهاری کرده یکی از کتاب ابن فضال یکی هم از کتاب سطوان درست شو؟ این دوتا کاری دیگه کرده من یه وقت دیگه هم خدمتون اعز کردم یکی از مشکلات احادیثی که الان ما داریم یعنی طبعا زمان ما از توجه نشده مشکل بشه مشکل بعد این تقطی روایات ما تو بحث تا آرز عرض کردیم یکی از عواملی که حدیث رو مشبه کرده گاهیم به حد تا رسونده همین تقطیه ارز کردیم تقطیه الان مثال های بارزی داره از اون کتاب وسائل کتاب کافی کتاب, کتاب وسائل وافی بهار اینا یک حدیثه صادقیه، خیلی راحته. خب با من مسادر اولیه حدیثه کافه. مشکل نداره. مشکل کجاست؟ سحن حسین سری تختی کرده. این خیلی کارو مشکل میکنه کلینی تقریر کرده. شیخ توصی هم اگر از مسادر نعت تقریرش مشکل نداره. سحن حسین سری لو تختی کرده، صفوان آقای تختی کرده. این خیلی مشکلی این از اون که فقط با تاییدات الهیه با قوله آنونیس و فتحات قیدیه باید حل بشه مشکله حالا دقت بکنیم ما روایت حسین زراره خوندیم از نسخه این فرزال مطم کاملش رو خوندیم روایت صفوان هم مطم کاملش اینه این عبی عبدالله قال از شعر و از صوف و, و ریش و کل نابط لایکن لا و میتن قال رسال تو ان البیغه تخرج من منبطن دجاج و تلمیته و قال تأکله هم این مقدار هم در کتاب صفوان آمده روشن شد دو مصدر شیخ توسی باز منفردن از کتاب حسین سید نقل کرده این باز از این پارادوکس شیخ طوسیه کسی دیگه از این کتاب نقل نکرده لاکه خود حسین سید از صفوان نقل کرده پس مصدر مرحوم حسین سید با مصدر کلینی یکی است حالا مشکل این است که این دو تا با این یکی هستن کلینی تحقیق کرده همه روابط نیومدیم. اما اونی که یک شیخ بوده، روایت در کتاب شیخ خیلی کرد؟ فی جلد شات میته یود این یود توش داره، در باقی شده، فیوسیب و فی، اینجا الان در این کتاب من یوسیب نوشتم، منشدم به تهذیب مراجعه نکردم، شاید یوساد بوده باشه، هیچ میشه لبن اول ما شیر توشیر از کنون در اینجا شیره ماست نیست مارا یا آب فعشرب و من و اتراب این دو تا یکی انتفاقه به جلد میکه دو حارتشه قال علی السلام نه هیچ ما نداریم این رو این رو هم حتی مرحوم کلینه حدید کرده خیلی عجیبه قال ل... يد دفعيون كته وبه ولاي الصلافي لكن مانعيهت نماز از بین میره یعنی از این حدیث مبارک انتفاع در میاد و سهارت و مانعیت حالا آیا احتمال داره همین نسخه کتاب روایت حسینون بن زراره به دقت کنید شعر روایت صدوق باشه که اگر شیخم نهار نکرده ما راهی برش نداشتیم عبارت صدوق رو اون روز خوندیم از کردیم ما مشکل ما با عبارت صدوق فتوا نیست فتوه که شازه اون درش بحث ما نداریم درش مطلب کاملا واضحهه که روایت شازیست فتوا هم بهش نمیشه لیکن مشکل این است که ما اصلا دنبال خود تاریخی شد که متن از کجا آمده آیا احبیدن شما الان این مصر رو مرحوم کلینی یه کرده نمیشه بگیم که مثلا حسین سعید از صفوان نقل در رو بود. به احتمال بسیار بسیار قوی این در کتاب, در کتاب صفوان بوده از حسین زراره و طبعا این مطلبم به اعراض از اصحاب ما دباقی رو کسی رو نمیدونه این مسلم میجه اصحاب ما الا ابن جونه که بطرقی این حالا عبارت ای من مرحوم شیخ صدوق رو یک بار بگیم میخوام تون تایروز خونده بودم که مرسله صدوق شماره پنج باب سی و چهار از عباق نجاسان به حسن این چاپی که در دست هر چاپ آلوله چهار سه سوم گلد ببینید قال سوئل اصاده و علیه السلام اگر این باشه سائل میشه حسین و زراره این مشکل هم شد لا بأسه و با بله ان جلود المیته اونجا هم جلده میته بود یوج علفیه لبن و ما. این لبن و ما هم اون تو بود و سمن داره اینجا روغن هم داره تو اون نبود این چی نشون میده؟ احتمالا اون نسخه که خواهم شد مختلف بوده اون نسخه مستره هست مثلا اینجا توش سند داره اونجا نداشته اون رواست مرمون شیخ توسی نیست فقط یک کلنه در اونجا داره جلد میته میسه یدبق احتمال داره این یدبق هم از نسخه صدوق مختلف بوده اگر یود باشه باز یک مقدار معقول چون سنیا همه بیشترشون قائلونه که با دبامی پاک میشه یک خوب دقت فرمودید الان ما تنها متن که یک مقدار مش چون اینکه بگیم صدوق اینقدر اشتباه کرده که خیلی بعیده که خیلی واقعا چیه عجبی غریبی نیست که همچین عجبی غریبی به احتمال بسیار بسیار قوی این همون روایته سوالم همونه یوج علفی ها لبن و الماء و سند ما ترافیق قال لا بست به انتج علفی ها اونجا هم داشت قال نه ما شعت من لبن اولب و تتوضع و من و تشرب اونجا هم داشت و و من و اتواق داشت ولیکن لا تسلفی ها اونجا هم داشت اولایو سلافی این خیلی اون حدیث با این حدیث نزدیکه پس اون بحثی که من مطرح کردم که ما مشکل ما این که از صدوق این روایت از کجا آورده؟ بس حالا حجیت نداره اون, جه خودش. اون دیگر و چه خودش بحث دیگری است. و چطور صدوق آورده؟ چه سری بوده که روایت دیگه ما عارضه با همه روایات ائمه و معارضان آنها پیش، اصلا مرحوم های شهرنشینی حدیث خیلی عجیب و غریب بوده، حدود یک صفحه و نیمشون حاشیه زده دارین عزیز. این اصلش چی بوده حالا؟ و چطور شده صدوق بر او اعتماد کرده؟ مشکل ما اینه. به نظر ما با این زمه این با هم دیگه همچی به ذهن ما میاد که این مطلب در کتاب صفوان بوده نقلن انل حسین بن زراره در, در کتاب صفوان بوده نقلن انل حسین بن زراره و احتمالا ولی علم و ولی علم و الله بازه میگیم اینه احتمال بنده دو مرتبه کلمه یدبه در اون مطلب شیخ توصی آمده، در کلمه شیخ توصی، فی جلد شات میته یود بگ فیو سب و فیه لگان قبل ما فاشرب من وتر الله قال نه و قال یود بگ فینتفأ به وراه صلاه فی یود دو مطلب آمده. به اشتراک میگذاریم اول ما این دلّا کلمه یود بگ از نسخه مرغوب ساده هستی شده. اون چوری که ما الان میتونیم اون اصول زوابت علمی تاریخی بگیم احتمال اینکه مثلا حسین‌سر اشتباه کرده احتمال این که حسین سید نسخه مثلا صفوانو بیخود ناز خیلی بیله اینا خیلی معلوم میشه در کتاب صفوان بوده و این نشون میده که مرحوم کلینی واقعا با چه ظرافتی این قسمتاش حذف کرده تصحیح کرده این یه تیکه از زوابت صفوان حالا بقیه رو واسه بخونم بله حنین حسین بن زراره بله قال سئلم بعد اینطوره ابي ان انفهه تكون في فی الانام انام انام بچه‌ی چیز به اصطلاح دوسن عمل جلی بود و هو میتون قال لا باس این مطلب در کتاب ابن فضلان بود که پدر من سوال کرد در زابر فضلان ابي هم من الانفه و جلو ذکر فرمودید این در کتاب منفزل هم بود. در این کتاب صحبانم هست در نصیحه و سنت. قال و سئله او آبی و آنها در عن الرجول یا خطو سنه او فیا اخذ سنه انسان میت تجعلاهم مکان او فقال الله بس هیچ لیش از این دو نصیحه بود فقط سن میت بود. و قال اقام تو تجعلا شفران جنگال لا بس به مسها اینم بود. و قال ابو عبد الله عليه السلام ابما و شعر و و سووفو و ریش کل و زاه که نابتون لایکنون مگرن این در کتاب کلینی بود یه کمی اختلاف داشت. آ در کله در شماره هشت و پیروات صفوان حسین نظارده نه بدلاقا از شع و و سووفو و ریش و کل و نابه واب داشت در نسخه ایشان و نداره داره کل وذا نابتون لا کووم مگهن اینجا در لای کووم مگتن. قال ما سالته تا انا البيضه تاخذ من بطن الدجاج الميته قال لا باس باكله ها اینجا هميش هم در این نوسه کلینیه ها پس معلوم شد که حسین بن زراره اذه از اسئله داشته اینها در کتاب صفوان آمده دقت करिए مرحوم حسین سید همهشون نقل کرده یعنی همین چند تا در کتاب ابن فضل بعضیش آمده. در خود مرحوم کلینی هم از کتاب صفحان بعضی هاشه کرده با اختلاف نصفه پس بین نسخه حسین سعیل با نصفه کلینی مطر هم اختلاف داره غیران مطلب یکیه اون تیکه آخرشه نهار کرده بقیه هاشه نهار نکرده صدر حدیزه نهار کرده. اگر این مقدماتی که ما با هم میمیم با قولم و یابشه که به با هم باستیم درست در بیاد مصدر کار مرحوم شیخ صدوق که یک روایت شاذ همه ائمال نوشتن حدیث شاذ دون اصلا از کجایی خیلی چیز عجیب بود به وقتیشون که جلد میتر انسان توش آب بریزه شیر بریزه روغن بریزه و این رو اعتراض کردن مرحوم‌های خودی نه اصلا مخالف اجماع قطعی خود سنیان سن سنیاون بودن با باقی بشه که اصلا مولا مخالفه اجماع قطعی نیست این نکته اصلا یکی از حجیت این کسی از کجا پیدا شده؟ اصل این چی بوده؟ حالا کمو زیاد شده؟ تحریف شده؟ نسخه شده؟ من به ذهنم میاده اصلش روایت حسین زراره احتمالا در این روایت ما... ما الان تا حالا چند مستر دیدیم ازشکه ابن فضال دیدیم صفوان دو تا دیدیم شاید این روایت حسین زرا در این مستر دیگه هم بوده تو اون مستر یدبختش نبوده کلمه چون صدوق فوق ال عادویه به نقل روایت کم و زیاد نمیکنه پس در در روایت حسین بن زراره البته با یودن خلاف اجماع یعنی میخوام بگم با یودن درست اشتباه نشه حالا اگر چون بحث آینده خواهد خواست خواستن که با خودشون کتاب بیارن ما فردا در بحث آینده که دباغی در, در پوست هم فایده نداره و اثر نمیکنه اینشالله ملاحظه بفرمایی کتاب صلاح وسائل همین جلد سه عباب نجاسات همین جلدی که الان دست من هست که الان داریم این روایت هم روش میکنیم اینشالله از باب 49 و باب 50 روایات بسیار متصل داره که حتی با دباقی هم فایده نداره این اتفاقی از ها ماست به استثناء ابن جنیده، بِسِسنا شیخ صدوق، کسی قائل به این رواید نیست. این رو ما در شک نداریم. بحث ما اینکه که چی بوده روایت؟ به نظر ما میاد روایت روایت حسین زراره بوده. یه بنسخه ای در اختیار صدوق قرار گرفته که توش کلمه یدبغ هم نبوده و ظاهرا مرحوم ابن جنید چون خیلی ذوق با سنی داره ببین یدبغ هم قبول بکنه. مرحوم ابن جریده در هم مستندش همین کتاب حسین سعید بودون را واچن در کتاب حسین سعیف از به اصطلاح صفوان اینا هر دو از بزرگان تایفن از حسین بزرگان عرض که با دباقی اشکال نداره سقط مانعیت سرات محفوظه هم میشه انتفاق کنه هم پاک میشه حتی شیر و آب و اینا میره توش ریخ و نجس نمیشه از دو با دباقی به ذهن من این میاد حالا خود حسین ابن زراره از کردن نداره مجموعه ی روایات حسین زرار در کتب اربعه ما یکیش همینه مثلا یکیش که ببینید به چند لغت یعنی مثلا آی خوی رو چند تا قرار دادن ما یکی صفوان یکیش کتاب شیخ طوسی یکیش مثلا ابن فضاله مثلا 6 تا 4 5 تا خوی کرده همین روایات با پروشان شده در حقیقت یکی اینا یعنی یک روایاته. و یکی دو داره در باب استمنا هم در جلد 10 کتاب تهذیب صفحه 234 اونم فردش معتبره از حسین بن از علی عبدالله سوال میکنه در استنما گفتم لاغری هم تو عجایبه ظاهرا ایشان یک مقداری شاید اصحاب ما کلا ایشون مثلا 6 تا 4 تا رو بده از این تکرارها یکی شاد معمولون به باشه بقیهش از این حرفهای عجیبه قریم توشه یکی در باب استنما که خب خلاف قطعی روایات ماست که انا رجل يعبدهم اذا فقال لا لا يبلغ به شيء ان چیزی نیزی. که این خب خلاف اجماع قطعی اصحاب ما استنما در کتاب تهذیب من چون نشد به وسائل نگاه کنم هر حتما تو وسائل تهذیب هم صادرا چیز هم نبودگی من از تهذیب برای شما نه میکنم جلد ده تهذیب صفحه 234 به نظرم من صفوان تو سر بشه به خاطر فراموشی کردم به نظر من یا صفوان یا حسین زورا یا عبد عبدالله اون روایت هم معرزان انهای اصحاب ما این روایت که در باب میتن عقل کرده این هم مشکل داره مخصوصا این قسمت روایت حالا چه توش دباقی باشه چه توش دباقی نباشه اطلاع معارض با روایات کسیره اصحاب ماست و قطعا معارضان انهاست نه این که احتماله قطعا معارضان اینها اصلا منشه این شده که به ذهن ما شاید مرحوم حسین زراره چون امام, امام صادق هم دعایی در حق او بفرمودن شایدیشون یک چیزهای شازی رو مثلا تو مجلسی بودن ها سنیون بوده چی بوده نمیفهمم فهم چی بوده بلید چیزهای شازی ایشان و فکر نمی خدای نکرده در غساقتش یا در نستجی رو احتمال کذبش در باره او صحبتی بوده احتمال بدین احتمال بدین مجلس مثلا مناسب بوده و الا اگر مثلا خدای نکنه در حق او ادنا شبهه بود مثلا صفوان که از اون عقیده میکنه ابن بکر که مثلا امویوسی از اون عقیده داره خیلی دعیده و اینکه عرض کردم راوی رو فقط نگاه نفرمایید گاهی میشه در مجلس کسی دیگر اصلا من این ذوات الان میخونم لکن انشالله تفصیل این بحث رو انشالله در آینده در همین ابوابی که من عرض کردم در اواخر به اصطلاح در اواخر کتاب تهارک باب 49 هست کردم بله. بله 49 و پنجه و اینها یک جاییش در اینجا داره که بله تا شد باشه بله حالا خیلی. اون روایتی اسمع ابو مخلهد سراج میگه بعضی از سراجی جل فوس درست میکنن یعنی چیزه قلاف شمشیر. از امام میگه امام میگه داخل بشن. داخلی که میشه از سوال میکنه که میگه ما از نیته درست میکنیم. امام فعلا دو بغه در شده. گفتن بله، فن لا انشاء الله لا خب این لسان لسان تقییه است. نه از ابو مخلط سراج سر خب از ابو مخلط سراج سر بوده معلوم میشه اون دو نفر که میگه دو نفر دم دری ایستادن در, ایست در میخواهیم بیان این داره نقد میکنه از سآل اونا انسان تا روایت رو میگونه حس میکنه که این اجوارش مناسب نیست در از این روایات شازه مثل مسئله جواز استنان است تا جیرو بلله یا انتفاع به ج یا بدون باقی که حسین زراره نهار کرده و مثل صفوان از اونه نهار کرده این نشون نمیده که به اصطلاح ایشون مثلا خدای نکرده اهل مثلا یکی تسامح بوده یا خدای نکرده خلاف باقی صحبت میکرده نقطه شب شاید خود صفوان اینها رو یه نوع از اون مطلب به اصطلاح تقییه برمیده علایه حاله ما الان فعلا روایت حسین زراره رو فعلا نمیتونیم قبول بکنیم قبول ما در روازه سنت با و این بعد ایشان داره، اصول روازه یشان کیشه از حاصل. به عیار این، این روازه مثلا خویسه دنوجن چهار دنوجن، این یک روازه نظر ما جایش متفاوت شده. به از این یک روایت است، حالا سه تاش یکیه. و به عیار روازه است، دو سه تا دیگر روازه داره یا دو تا دیگه داره. یکی که معمول با هاست بعدی، تو ذهنمان نیست. الان حالا مجموع از حاصلشان خیلی کم نقل کردن اون مقداریان که نقل شده خی وضع روشنی نذاره و صلی الله علی محمد و آله تطهیر